الرحمن و الرحیم، و صلّا اللّه عليه و سّيدنا رضی اللّه عنه الحیب، على اصلاً یک مقداری به خاطر اینکه استاد در اینجا اشاره موارد این بحث شدن که آیا اهل سنت به اصطلاح محکوم به کفر نه البته ایشون بحثشون اهل سنت بود در روایات ناصب رو آوردن و درصدر تطویر این مطلب یعنی روایت ناصب بر اهل سنت مبینیست برای اون مطلبی که در بعضی از روایات آمده یا توی این بحث خوندیمونش هم می که حرکتی که به تقضیم اولین دوم باشه دو، دو، یک فی در نسل او، به الا معلوم این روایت در باب ناسه و الان تقضیل سهدش از در کتاب تقضیلات ایشون هم در تنقیه نظرم جلسه تنقیه هم هم در کتاب که ایشون دارن دروسی فقه که تغییرات همین جلده سه کنم جلده هر دو در زیل همین بحث ناسبی رو ایشون اونجا متعرض شدن هم ناسبی هم مطلق احل سنت اونجا البته چون من خیلی مقید نید یعنی درم نمیخواد کردیم اینجا اینجا فهمدم اونجا در این کتاب تنقیه اولش احتمال می دن که این اطلاق کفر برای اینها در بزرز روان در مقابل ایمان باشه. احتمالی که می اینه. اما تو آخرای های به ذکر احتمال می که نه. اطلاق کفر که اینها واقعا کافرن ان بعد از احکام ظاهری اسلام براشون بارو شد. دو احتمال می دن. یکی اینکه در مقابل ایمان باشه، تشعیق باشه. یکی این که مراد کفر واقعی باشه بعد از احکام ظاهری در آخر بحثشون این احتمال دوم رو ترجیح میدخن ولی بحثشون نگاه کن تنقیه رو واضح نمیشون دیگه من خیلی نیمیخونم چون خدای رایتره مثلا هم رو برمانه دیگه بشه الان که به ماکان در اونجا هم در ذیل بحث ناسبی ایشون رو بحث رو و در ذیل بحث عنوان مطلق فرق غیر شیعه الا یا فرق اسلامی مثل در حل یا شیعه غیره امامی مثل زگی و اسماییدی اینها اشون در اونجا متعرض این بحث شده در این کتابی که به نام دروس از ایشان چاپ شده جلد سومه در تنقیه هم به نظره سوم جلد ثبوم نویشون کتابی که من داریم شماره پشت جا به در حال تنقیه جلد سوم داخل همه یا دوباره سوم که متعرض نجاسات شده ایشون در اونجا آوردن کمی عبارتشون سرن و زیلن. اول و آخر برس و هم یک کمی اجمالاً احتهافت رو یاده حفظ که بعد در همون به نظر در کتاب تنبیه یا در همون دروس شونه هر رو با هم کنگید دارن آخر برسون بگیزم ای که از آیون نعروی کردن که اهل سنت در دنیا مسلمون فی دنیا کافرون فی الاخره شاید مثلا نظرشون از آخرشون آخر هدن بود تابع دنیا است مراد این باشه که اینا در باطن در واقع کفار در ظاهر مرادشون از دنیا ظاهر باشه به آخر دنیا ایکی از کنم که ایشون در اونجا هم بله این مطلب رو می که اینطوری و مایل یعنی انسان احساس می آخر کلامشون این باشه که اونا در واقع کافر هن ولیکن به حساب ظاهر حکم به بعضی از اسلام شد میشه به چون این روایتی بود راجع به ناسبی و به خصوص ناسبی ناسبی بحثه متعددی هست یه بحثش همون روایت معروف ام... ناسب که اگه پولیشه پیدا کردی هر پیدا کردی بگیر خود مالن ناسب و جد و به اثر اینام نگاه میتونم اخیلی هست که این حدیث بودن خیلی چیزی رو که فزدان که ترجمشون چینو کوکون یکی اون بحث اموال ناصبیه که حالا جاش اینجا نیست شاید توی خود مکاسب درس مکاسب به مناسباتی یکی هم این مسئله تهارت و نجاست و باز مسئله ازدواج رو یعنی جهات مختلف بحث داره فعلا روی این مساله همین تهارت و نجاستشون کردن بحث مردم صاحب وسایل در یک بابی در عباب مزاف به مناسبت به اصطلاح خودشون ماه مستعمل این روایات رو بردن. این یعنی روایات تصادفن توی باب مستعمل در وقت حدث و از غرا حدث و اکبر بحث فقیه بوده که با آبی که انسان وضوع میگیره حالا هیچ آبم تغییر داده نجیستم نشده موازه وضوع هم تاهر بوده آیا میشه دو مرتعه وضوع رو یا نه؟ یکی هم با آبی که قرص کرده میتونه دو مرتبه قرص بکنه میتونه دو مرتبه وضع بگیره یا نه این بحثی بود از اول مطرح بوده از خود سنت رسول الله رو مطرح کردن سنی شیئه داره بحثیست مستقل خودش اون وقت مخ... مرحوم سال و سال این مسئله رو به مناسبتی توی باب مضاف اوورده اگر کتاب و سال جلد اولش چاپ مرمای رو بنده خدمتون باشه باب هشتش باب ما المستعمل فلوزو این باب باب نهش باب حکم الماء المستعمل الغسل. وقتی یه باب نهی که هست بیشتر روایاتی رو که تهارت دلالت میکنه مثلا حالا از این باب نه بله قلت الهبی حمام یختل صرفیه جنوب و غیره اختسل و من ما قابل نه هم لا بأسه اختسل من هم جنوب ولقد اختسل تو فی و جئ تو و فقسل تو رجی یا این فقسل تو رجی یک بحث خارجی داره کردن نمیخوام وارده شون چون جش بحثش ما اینجا نیست و ما قسل تو همه الا به ما من به همه من چون مثلا خاک بود این یا مثلا این روایت دیگری هست مال هنان هنان ابن سدیر سمعت رجلن یقول عبی عبدالله این یاد خل حمام فی سهر و فیهن جنوب و غیر و زالک ف اقوم ف, ف ها علیه بعد ما افرق من ماه هم انتظاه میکنه نه به اصطلاح به قول فارسی ها ترمان معنای ترابش میکنه در لغت حرابی میگه این یمده هم هم همون که در فارسی میگن از کوزه برون ترابط که دروز. این نوهمان معنای ترابط کردن و مثلا ترشوه کردن آل علیسه هو جار جار آل تو بل آقا است اگر آقا جاری سشکال نده حالا یه بحثی هست که این معال همان هم جاری که اینجا اشاره بشه هست که این مراد از این معال همم هم هم و اصولا این سؤال جنوب با اینکه اینکه واقعا این جاری هست یا جاری نیست یا این مثلا ذهنیتش این طوریه که آبی بوده در خزانه بوده خزانه آب زیاد بوده بعد از اون مثل کشی کرده بودن به حوضشهای کچلو امام میخواد بفرمونه که این حوضشها جاریه بنایه علما فعلا به اینه که اینها جاری نیست همین آب لولکشی شهری رو خب خیلی جاری نمیدونه, نمیدونه. خیلی نادر نادره کسی جاری بدونه ماء اجاری بود داره ماده باشه این ماده نداره مخزن پر آب میکنه تا خالی بشه آب حمام هم داره ما هم اول حمام به منزلت ما اجاری لزوم بعضیان فتوا دادن که مثلا این های شهری اگر تو خونه هاتون باشه این آب کره آب اجاری حکم آب جاری نداره اما همین لوله‌کشی تو همم باشه حکم ما اجاری داره حسب صفتهای معاصری این به خاطر این تعدده ها اینا یک شهرهای داره خود ما این تعهد رو نکردیم تاریخش رو و خصوصی خصوصیتش بگذرید برای جای دیگه که فعلا جاش اینجا نیست ایشون تو باب 9 حکم به قول خود ایشون تعلیل به حکم کرده چون به واحد متعارض بوده حکم ما المستعمل وقت تو باب 11 ایشون چراحت الاختسال به وصالت الحمام بعد ایشون حکم به طهارت کرده یعنی توقف کرده بعد فهمیدن که نه چراحت داره باب 11 رو. این ربایت که ما میخواییم بگیم در این باب یازده رو بردن. در از این باب یازده در حقیقت معارضاتش بابی نهه چون ایشون بعد از این که بابی یازده رو میاره خود صاحب رسائل میگه اخوان ها احادیث لها معارضات تقدم بعضها فی ها ذهل افواکم و بابی نه و بعضها فی احادیث ما اله البته ظاهرن یک چیزی اینجا افتاده چون ما حمام هم لمیه تقدم و یعکی بعضا ها فی باقی و یعکی باقی ها فی بحث نجاسات این یعکی رو با زودتر میابد یک کمی دیر رو برده به که هم هم مخواستم برای آشنایی شما با خود کتاب وسائل که کاری کرده چون یک بابی داره که ظاهرش تهارته حالا از میکنم جهات مختلف داره همه و از کردم من در کلمات بزرگان که در اینجا آمده خیلی در روایات و حتی اوائل کلمات اصحاب ما یک نوع عدم وضوح هست. ذکر کلمه حمام که با عنوان در روایات پیغمبر هم داره که نها به salat e اون حمام اتاقی بوده، خود جایی که مکه مدینه مشخص شد، حجر پیغمبر کجاست؟ بعد از حجر پیغمبر و بین حجره پیغمبر و بین حجره از زهرها منظر از زهرا یک مثل, پ... مثل آبم بساس فندو خانه ای و قلومت انصابه یک جای انباری مانندیه که حالت زوزنقه داره. این حمام پیغمبر این بوده. در حقیقت در اونجا جا. فرصان تشریف میگذاشتن آبی میریختن میشستن. همم اصطلاحی زمان پیغمبر نبوده. اصلا این رباطه نه هم نبی هم نه در حقیقت بیشتر هم های شخصی دید مثلا هم که ما تو خونه داریم نه هم عمومی و حمامش هم هم به این صورت بوده جاش خارجی شمال خونه پیخنبر اینجوری بوده این در زمان عمر بعد از فتح ایران درست کنن هم و آمد در مدینه و مخصوصا همین سخود ایرانی ها آمدن در مدینه هم ساختن که. اولش هم یک کمی گفت بغلور همیشه هر چیزی جدیدی سست ایجاد از عمر نه میکنن که خوشش نمیواد از و از امیر المؤمنین داره در کزوب تاریخیش هم داره در کتاب تفسیر و قرطبی هم یک جایی به مناسبت دید الهی یا لفظ کجای تفسیر گفتید که عمر اینطور گفت و به حمام و علی ابن ابی طالب میگه نه این فکر خوبی سین برای پاک کردن بدن و تمیز کردن بدن فوق العاده مهمه. حالا اینکه شماکان هم ما در مدینه مسلم از زمان عمر شواهد قفیز بعد مشکلی که ما داریم هنوز تصویر واضحی برای ما از اون و ظاهرش اینطوره که اگر خزانه آبی بوده که اون آب رو گرم می‌کردن این خزانه رو با دلگودینا پر می‌کردن چون مدینه رودی نداشته آب مدینه از راه چاق بوده قائلا باید این مثلا خزینه رو با آب چاق پر می‌کردن مثلا زمان امام صادق و منان دقیقا نمیدونیم که آیا این روایات از همام های مدینه است یا همام های کوفه چون سائل از کوفه است و مجیب که امام باشه از مدینه این ما در بحث همامی شبهای مفصلی داریم در همام های کوفه احتمال داره به فراد متصل بوده چون نزدیک فرات کوفه مشکل نداره اون آبش آب جاریه اما در همام های مدینه آبش آب جاری نبوده پس اوقات علمی چون در مدینه حالات چاه داشته اسودن از کری اطراف مدینه گاهی جوبها یا نهرهای فصلی بودن تو باهار آب جاری می‌شدن همین سر محذور علی یا محذور یا محروز محسوس اگه شیده باشه خود مدینه چاه داشته ما که برای شما زنجن کمی آب در اونجا خیلی زیاد بود اما در مدینه وضع آب خوب بوده حتی توضیح داریم که چاه ها 5 متری بوده این که میگه امیر اومان این آبت چاه کشیدن اومان آب خیلی زحمن نبوده پنج شیش مزید بوده تنابی مثلا پنج شیش مزید عمق را هم در این کتاب تا وفا و وفا در اخبار میدنه تا مصطفی ها سمودی داره این چاه که شرف داده و لذا احتمال داره که بعضی از این حمامها ها این بوده چون ما حتی چاهاش محدود بوده در این کتاب وفا الوفا که راجع به مدینه هست با این که در سال نقصدیشون نوشید تمام چاهای مدینه اسم برده تمام که مجموع در مدینه چه چاه بوده چون ما به یک مناسبی که یکی از چاها به قضاء به معروفی بوده که بحث کر از او گرفته شده ما به این مناسبه به بحث داجه به چاهای مدینه و اوضاع چاه. معلوم میشه بعض از این چاها مصاد به آب حمام بوده. وقتی این سوال مطرح بوده که با این چاه میشه غسل کرد یا نه با آب میشه. ظاهرا باید اینطور باشه. هنوز بعضی از این روایات برای ما خیلی مفهومش روشن روشن نیست، از حمام اون زمان و بعضی آبی که اون زمان بوده. حالا در حمام های کوفه احتمال اتصال به نهر کوفه و آب جاری هست. این که ماء آل حمام به منظرت الماء الجاری این باید یک نکته توش باشه. اگر اینجوری که ما الان می‌فهمیم و فقها فهمیدن این جور گرفتن ما آب همام یعنی یک خزینه داره فرض کنید 10 تا کور می‌گیره 5 کور از اون خزینه لوله میاد های کوچیک کوچیک هست هر حوضی توش یکی. امام می‌خواد این آب جاریه. الان علمای ما رافی که این آب کور جاری نیست. چون اون خزینه تمام میشه دراز آب می‌ریزن. آب جاری اسلام به به مجرد اینکه از مبدا خودش جریان پیدا کنه آب جاری نمیگه خیلی از بحث خارج نشم چون که طولانیه واردون اون بحث نشیم الان که فضا ماکان از کردیم الان در فتحه ما معاصرین داریم که مثلا همین آب کشی شهر رو میگه اگه تو حمام حکم جاری داره بیرون حمام خونه هاتونه حکم کور رو داره این حکم جاری توی حمام به تعبد روایاته ما به این مناسبت تو بحث ما آل حمام بحث که داره یا از روایه تعبودی در نمیاد. علن که ماکان یکی از مسائل حمام همین بوده که جنوب در جنب درجا می میکرده با اون آبی که از جنوب غسل کرده میشه انجام داد وضو گرفت یا غسل کرد یا نه. با غساله او یکی هم مسل به این آبها در بعض از چاه ها بوده با آب اون چاه میشه غسل کرد یا نه. این یک مسئله بوده خوب دقت بفرمایید. احتمال داره چون تا اونجایی که من گشتم هنوز شواهد برایش پیدا نکردن ببینم در کلمات اهل سنت الان یه روایت واحده ما آمده که به امام عرض میکنه این روایت رو میخویم حدیث شماره دو از باب 11 ان محمد بن علی بن جعفر رضا علیه السلام سابقا توضیح دادیم مرحوم علی بن جعفر که پسر امام صادقه دا اولادی داره یکیش محمده این محمد ابن علی ابن جعفر این پسر علی ابن جعفر معروفه تو یه بعض روابات خونسن اسم ایشان هست اما به عنوان عبی جعفر ابن عبی علی ابن جعفر عبی جعفر ابن علی ابن جعفر و محمد ابن علی ابن جعفر یک مثل نبه امام صادق میشه و در حقیقت پسر اموی حضرت رضا. چون علی همون امونی حضرت رضا میشن برادر موسیٰ نجعفر ایشون هم پسر امونی حضرت رضا این به لحاظ طبقه ایشانه محمد ابن علی نجعفر البته ما از پسرهای دیگه هم از ایشون میشناسیم شاید پسر معروسهش حسنه که پسر حسن به نام عبدالله عبدالله هم نه حسن که زیاد اسمش رو بودیم ایشون هم نبی علی نجعفره این پسر علی نجعفره ع غیر از اینا میشنسیم چند تا از اولاد علی ابن جعفر غیر از حال کتب انسام که غالبا متعرز میشن تو روایت هم داریم پس این محمد پسر علی ابن جعفر یعنی دقیقا پسر عموی حضر رزان سلام الله علیه قال من اختسل من الما الگی قد اختسلفی فاصابه الجذام. ظاهرن مراد از جزام ام ان امراض پوستی بوده توش یک جایی هم برص داره ظاهرا یک عنوان مجموعه از انواع امراض پوستی چون جزام یک مرض معین است که یک حالات خاصی برای پوست پیدا میشه وقتی هم زیاد داره الحمدلله خیلی کم شده حتی مردم در مشهد منطقه خاصی جزامیا داشتن بیمارستان خیلی ظاهر بدن رو اصلا مشوه میکنه حالا از بس که پیگیری کردن چه این مرض گرفته شده فلا یلومن الا سرش هم واضحه چون افراد مختلف با این آب خودشون میشستند انواع مرضهای پوستی انسان در انواع در معرض انواع مرضهای پوستی اتفاقا این فساء و جزام طلای لمن الا نفسه فرمودم در عبدالحسن علیه السلام این نقششه عرض کردم و الان شاهد نداریم ان اهل المدینه میگن ان فيه شفاء من العين این خیلی عجیبه این من فعلا توی کتب اهل نه تو این بحث تو بحث استosalی ما هم ما پیدا نکرده میدونم ولی اگر جای دیگه ظاهرا شپاه انمله این یعنی چشم زخم و از بین میبره یعنی اینی که مردم چشم میخوره یه میکن ناخه برای که چش نخوره مثلا فرض کنید. یک نعلش و آلوده نم که چش نخوره ظاهرا یکی از راهایی که فکر میکردن چشم میخوره انسان با همین آبای آلوده کودش رو شبه. قلتو این نفیه شفا هم نه ظاهرم بارد این باشه نه شفا هم نه شفا هم نه فقال علیه السلام کنه بود این چیه شفا هم نه دروگه یقتصفیه جنوب و منرحرام شخصی که نستجور به از زنا مثلا میاد اونجا. و زانی و ناسب اله با شروح ما اون ناسبی هم میاد اونجا خودشی میشوره و کل من خلق الله همه میان اونجا خودشی میشوره این چیه اسم مثلا سم یکون و فی ش است اینطور افراد مختلف و حالات مختلف هست این چطور میشه شفا در این قرار داده بشه عرض کردم من الان دقیقاً بخویم مثلا بگیم واقعا اهل مدینه نظر شد. تو میدونی که من برادم تو مثلا با مراجعه بیشتر به شواهد شاید بشه اینو پیدا کرد الا یا حال دقت بکنید اونچه که مرحوم صاحب وصايه در این باب 11 و در باب 9 مطرح نظریشان بوده مسئله تحارت و نجاست این آبه لکن تو این روایت اونی که مطرح نظر تهارت و نجاست نیست برای این آب خواست نقل کرده و اونی که چشم زخم رو میگیره اون دقیق میکنیم این نقصد من روشن شد لذا الان یک مشکل دیگری که پیدا میشه تو این روایاتی که در اینجا هست آیا نظر به تهارت نجاسته که ظاهرا سال و سایت اینطور پهمونده مرحوم استادم در همین مناسبت رو گردن. وقت نتیجهش این میشه که ناسبی نجسته. کردی؟ یا اصلا مراد این روایت بحث نجاست و تهارت نیست. اون بحث عوامانهی که بین مردم بوده که این آبی که آلوده است این جلو رو چشم رو میگیره مثلا چشم. چشم زدن میگیره برای کسی که چشمش میکنن این آب آلوده موثره اگر این باشه امام میخواد بفرما خدا در آب آلوده شفا قرار نمیره اون آب آلوده‌ای که توش مثلا فرض کن جنوب هست زانی هست و ناسپی که احتمال شفایی که در اون قطعا نیست حالا مثلا میخواد امام میفرما قطع میکنید مروم های افتایی در یک هاشی بروسائل دارن یعنی شرمانند بروسائل ایشون احتمال دارن که این روایات مثب بهش این نکته باشه نه به اون نکته تاها رفت و این هم که امام می‌فرماید میفرماید ناسبی شرمه هما ناسبی ارزانی و از جنوب و حرام هم بدتره بدتریش نه به لحاظ تاها رفت نجاسه بدتریش به لحاظ امید شباه بذارید رکود کنیم چی میگم الان برداشت مرحوم صاحب و سوال مرحوم استاد بدتری رو و رو مسئله طهارت و نجاست خب تا... طبیعتا اینطوره که اگر بدتری به لحاظ طهارت و نجاست به شکل ف... در یک شر کلمه هست مثلا فرض در باره سه بار با شسته بشه یک بار با خاک دو بار با آب یک بار با خاک خب ممکن است که ناسبی که بدتر ترجمه اون مثلا پنج بار شسته و این قطعاً در ناسبی تنجبار شدن یک بار کافیه. یه حکم ولوغ کلب نداره به اصطلاح ولوغ ناسبی. قطعاً اینطوره پس بگیم اصلاً این روایات ناظر به این مطلبی که در مدینه بود. در این روایات در زمان حضرت رضاست. روایات دیگه زمان حضرت عبی عبدالله و زمان عبد حسن کازمه. دیگه یک مشکل این روایات اینه که وقتی امام میفرماید ناسبی شر شر به چه لحاظ خوب فکر کردین؟ به لحاظ طهارت و نجاست و به لحاظ اینکه ایشون مثلا نجسه و کافر نجسه یا به لحاظ اینکه شما چه امید شفایی در آبی که ناسبی خودش در شسته؟ اگر امید شفایی در جایی فرض کنید مثلا خدای نکرده بازم باشه ناسبی از این جهات چطور میشه خداوند یک انسان ناسبی رو در شکر آمدی قرار بزه که اون آبی که ولی که ما شسته شفا بشه برای چشم زخم مثلا. او پیسی میگه کسی چشمش بله مثلا بابا میشه مرز میگه کسی چشمش نمی کنی اگه این شاید مراد این باشه پس یک مطلب راجعه به این که اولا باید بینیم اصلا کن لطن دباعث ما اهمام چه اینجا چه اینجا دیگه برای نبود که واید بشید. بیدیم حالا که آدم باز میشه باید توضیحاتی عرض بکنه که تا حد زیادی روشن بشه مطاله. حالا روایت باب رو میخونم. این تابعید بیم وضعه روایت چطوره. تو بعضی از روایتش انجست در برای که خب انجست میشه به همون جند. یعنی اگر شد انجست به لحاظ اون اثر که اگر او مثلا کسیف بود و خداوند در شر... نجا... شفا قرار نده ده این انجه هم شفا قرار نمیده تلیق تن نجاست هست اما به این قرینه که در این روایت آمده اینطور روایت هم, هم میخونه یک مقدار توضیح ارد میکنم پنجمش بیشتر به اماره طهارت میکنه چون در نفسانیو در نمیونه بله مثلا انجه تولا آمده درست میگویید حدیث اولی این. این باب رو مرهوم شیخ توسی آوردم. حدیث اول رو به اسنادی هی هم محمد ابن علیه محبوب دیگه زیاد صحبت کردیم که شیخ توسی از این کتاب نوادر مصنف یا نوادر مصنفین زیاد نرم کنه و منفرد هم هست در جهده هایی که مرهوم تهارات و صلات و این حدوده منفرده اما در جلده های حدود دیات و قضا و اینها صدوق هم گاهی داده اما کلینی قطعا نداره حسولا روایات محمد ابن علی محبوب در کتاب کلینی کلن وجود نداره یک دونه حدیث از ایشان در ایمان و کفه کلینی با واسطه ایشان حلی. و خیلی هم تجلیل شده محمد ابن علی محبوب از اشائری قوم از بزرگان قوم هنوز هم نفهمیدیم چرا کلینی کلن از ایشان میکنه. من البته خوشن ورساله که چون وزن ایده قابل قبوله ان محمد بن عبدالحمید ایشون جلیل و قدره انا حمزته نه احمد خب ابن اجم احمد در این طبقه نمیشناسیم مرحوم برقی هم اسمش برده که من اصحاب الکاظم داره این لباس دیده بران بره به هر حال ایشون رو الان نمیتونیم تشخیص بدیم احتمال داره که مثلا از عجله هم باشه باید نیست که الان مشکله چون مثلا مثل محمد عبدالحمید ازشون آمده آل سعال تو و سعاله و غیری، انال همم آل قدخل ها به این بود البته که گاهی در حمام ها با لند وارد نمی شدند. این توی خیلی شو... تو آداب حمام توی آتش هست و قضل بسرک دیارا نگاه نکن ولا تختسل اینجا تعبیرش لا تختسله اگر لا تختسل باشه عادتا با بحث نجاست و تهارت می سازه بحث شفا و نیست بحث تختصر تناسبش با مسئله به اصلاح تهارت منلبه رلتی حالا یه نمیگم مشکل این بوده آیا تو حمام های یک چاهی بوده که آب میرفته اون تو بعضا میرفتن تو همون چاه خودشون رو میشستن از کلم بعضی چاه در مدینه خیلی بود نبوده چهار پندونه پند مثلا با آب میرسیدم و آب فرابانی هم داشته مثلا 6 متر 5 مثلا آیا واقعا اینجور پله داشته وقت آب حمام جمع میشده اونجا هم میگرم همه از ما همم هایی که ما داریم اون زمانه فعلا تصویر نمیکنیم بلا تخسل من البعرلتی تشتم او یا یشتم او فیه ها ما اول همم فینهو یسیل او فیه ها چون معلومی میشد توی همم ها چایی بوده که آبهای که اینا میشستن تو اون جمع میشده ما یختص را به جنوب و ولد و زنا و ناس بلند و احلالده و هوا شر هم از اون ور حالا محل جنوبش محل کلامه اما ولد و زنا قطعا برمانشون بتهارد ولد الزنا است این مشکلش چیه و مرحوم صاحب وسائل هم حمله بر کراهت کرده اگر چاه بوده چون بلا اشفا در روابط هم داره فعلا ما آلبر فعلا لهو ماده ما بر باز اون لا یفسد روشه شی فعلا لهو ماده. حالا بر از این آبهای مختلفی خم شد توش آفتاب که چه نیست میشه؟ که یعنی میگه یک اب. ساهل وسائل به ظاهر قبول قبول کرده و نتیجه داده کراحت یه وقت کراحت هم بکنه به زودی از کن. این وبايد یک مشکل مشکلات عادیه ای برا نه مشکل واره شاید جنبه‌ای که بوده به خوده مثلا شاید اعتقاد پیدا کردن که این جور روایات ممکنه یک نوع تشریع شخصی بوده یعنی مثلا امام نصابی حمزه بن احمد انایت خاص داشتن به او دستور دادن نه اینکه حکم عام برای باشه یا حکم الهی باشه که مثلا خاصم بهش میگن تو لباسات نظیف باشه اینطور باشه یا مثلا به یکی میگن تو نوافل ترک نکن ترک نکن به هیچ وجه ترک نکن یک نوع دستورهای شخصی میشه هم می کنه من اینو سابقا چند بار عرض کردم این جور روایات رو میشه حکم کلی گرفت با قرینه بقیه روایات هم به کراهت باید کرد نه ظاهر خلاف این جور روایات رو میشه حکم شخصی گرفت به هم عمل کرد حرمت وقتی این بحث پیش میاد که آیا امام میتونه این کارو بکنه ظاهرا این مشکل نداشته باشه تشویع در حق شخص حتی روش کنم تو نمازشب حتما بخون ترک نکن من واجب میکنم برده نمازشب بخونی این تشریح, ترجیح، تشریح شخصیه این اشکال نزده اینو من از کردم چون یه بابیست که اگر باز بشه در صده ها روایت ما تأثیر گذاره مثلا مرمون صاحب وسائل تعارض دیده از یک طرف امام میفهر ماهالت بایه رواسون از یک طرف میگن اونی که اجنوب بیاد پاکه از یک طرف میگن لا تختصه. جمعش میکنیم به هم خب شما ممکنه جمعش بکنیم به حکم کلی و حکم شخصی یعنی نحنی دیگه این در حقیقت پاکه اگر بهر باشه ال بهرلتی یشتن و آفیه همه آل همه یقیقی میکنیم و همینطور هم هست هم یعنی بهرهایی که در مدینه بوده واقعا هم هرچی چی کشید نمی آده به داشت یعنی واقعا فعنده لهم آده اصلا اون به قضایه را عرض کردم قضایه بزایه را را اون اونم همینطور بوده اصلا رسول الله سوال میشه که درش بول هست فلان هست حتی خیره این که مال خانم ها برای بله حیز هست فلان هست پیغمه را عشقان داره پاکی لذا ممکن از هم به برکراهت بشه که ایشون گرفتن میشه حکم کلی میشه هم بشه بر مسئله شخصی که راهی که ما یه احتمال هم این که تصوری که میکنن که این آب خوبه برای شفا برای فلانه برین تو این آب چاه مثلا قصد بکنیم برای اینکه که چشمتو نخوره احتمال داره اما ظاهرش بهش نمیخوره این ظاهر حدیث نمیخوره که مثلا چشم چشمون یو چیزا باشه این سند حدیث الان اشکال داره به خاطر احمد ابن احمد حدیث شماره دو مرهوم کلینی انحسین ابن محمد از ایشون که سرعصان محمد بن یهیان این دوتا هرده از بزرگان اشاره قوم هستن این علی بن محمد بن سعد ایشون هم از بزرگان قومه. این از یک محلهی در قوم بوده قوزددان بشون قوزددان قوزدشون غز منه ابریشن جمع بین کلمه فارسی عربی اینا از قومی های یعنی از افرادی بودن که محله قزدان و اسمش هستیشون در اصلای ما ام محمد بن سالم ایشون اسمش آمده البته یک شرح خیلی مفصلی مادرش از بحث مکاسب راجع به داده و روایاتش که اوارد نجاشی و مشکلاتی که داره توصیف خیلی واضحی نداره ام موسی بن عبدالله بن موسی اصلا غالبا وقتی یک اسم میاد بعد به یک نفر منتهي میشه اون شخص اخیر باید مشهور باشه اگر نبه فلان مثلا این طور باید باشه وقت چون بعدیش نوه امام صادقه محمد علی نجعفر احتمال در حد احتمال رو نداریم احتمال دادن که ایشان نوی موسفن عبدالله محض باشه خود من احتمال دادم چون ما یک محمد پسر عبدالله محض عبدالله محض اولین نوه امیر المؤمنین و حضر زهراز. یعنی پسر امام مشتبه که به مرباز و حسن و دختر سید و گرفت این پسری برش بدونی آمد اسمش عبدالله این گوزن عبدالله محض چون هم پدرش هم مادرش اولاد از زهره و امیر المومین بودن اولین فرزندی که پدر و مادر از, از زهره ایشونه بعد امام باغره چون امام باغر پدرشون از سجاد پسر امام حسن و مادرشون دختر امام حسن به عبدالله مقدم و خود عبدالله جو زعیمه زیدی است و پسرش که میام به سیر کردن محمد و ابراهیم اینا پسراشن یکی‌شون این موسا موسی البته مختفی بود بیشتر حالی داره یه قصه‌ای هم داره که یک نفر آمد به شهر نسوان دازو و گفت قسم باقر رو بعد, بعد باد کرد و افتاد طرف مباهله کرد حال موسی از مال این شخص احتمال میدم با قرینه نوه امام صادق ایشون نوه موسا پسر عبدالله مرز باشه احتمالی که خودم بیدم الان نمیدونم نشده که تو به رجاله نقاطم که کی باشه اون محمد ابن علی هم که خوندیم اون قصه احمدینه و شفا احمدل این هم خوندیم بگه تکرسن. این حدیث هم دو سه تا مشکل داره بیشتری سر محمد بن سالیم اسمش آمده ما خیلی توصیل نداره اون یکی هم نداره خود محمد پسر علی بن جعفر چون امامزاده است به الله به عنوان توثیقه واژه از ایشان ندید حدیث شماره 3 محمد بن یحیی ان احمد بن محمد علی بن ان رجلن احمد بن محمد مولا اشعری علی بن حکم از بزرگان ان رجلن ان حسن علیه السلام بازم موسی بن جعفر فی حدیثی قال الله من قسالته ما الهما نه یخص یختتصافی من از زننا و یخ صدافی حولد و زنا و ناس بلند اهل احل و هوا ش و که اقتصاال از زنا و بلدزنا که این اقتصاال از زننا فرق تاثیل ایجاد نمیکن. لذا از این فهمیدن کراهت به تعبیریشان و از کل احتمال هم دا نااز و هم نقطه شقه ها منره باشه حدیث شماره چهار مرحوم شیخ کلینی هم از اصحابنا احتمالی داده شده که کی باشه ابن جمهور از بعض از اصحابنا بعد میره به ابن جمهور ایشون از خط بصره و ضعیفی ایشون تضییف شده اما محمد بن قاسم ایشون هم تضییفی داره در کتب ما نشن دو تا داریم یکی صراسی که ضعیفه یعنی محمد بن قاسم بطل المعروف بالبطل ضعیفه که احتمال همین باشه و در بحث محمد بن واسیم اخ مفصلان صحبت کردیم و مشکلات موجد داره که از جشن جنیز. انب نعمی آب این حدیث هم مشکل سنتی داره که خیلی ظریفه. آله لا تختسل من البیع الکی یشتم و فیها بصالت الحمّا فَإِنَّ فِیها بصالت ولد الزنا لكن از که مزد الزنا تا و هوه لا یتخر الا سب عت خیلی عجیبه دیگه. واقعا قبول شدیم. و فیها گسالت الناس و, و هو شره ما ان الله لم يخلق خلقا شروا من الكد وان الناس لنا وان الناس اهلنا علی الله اینجا تعبیر اهلنا داره این اهلنا انصافا و همون شفاء این بهدار میخوره تا با نجاست که این ناسب از سقفش خدا ارزشش کم این روایت این سندی که الان در کافی ضعیفه مرموم صدوق همین رواید داره. علال نقل کرده این محمد بن حسن که ابن الولیر استاد ایشانه این بن ابن عبدالله عشری که جای قبله و کاملا شناخته شده است این احمد بن الحسن از که این سعد خرج فی طلب الحدیث علال کوفه این احمد پسر ابن فرزال معروفه. یعنی برادر علیه این هم اصطرقاته فتحی همه هست سعد به کوفه رفته از ایشان پس حدیث و طبقه همون قبائدی که گفتیم صدو که وقمه ابنالداری دام قم سعد دم قم داکن سعد به کوفه رفته احمد از کوفه است احمد ابن حسن ابن علی ابن خزار انال حسن ابن علی من فکر میکنم این حسن ابن علی رو یا وشکا گرفتن یا پدر احمد گرفتن. آگری پسر تو میگه ان شاء الله شا گرفته. انا عبد ابن بوکر فضال پدر از عبدالله الله زیاد میکنه. پسر نقل میکنه, علی میکنه. تو اینجا احمد علی نیست. نه علی بن از باباش حسن بن فضال, فضال. ان ان ما اینه ای که از احمد اینجا احمد نغ انا احمد ابن حسن انا حسن ابن علی ظاهرن مثلا شون ابن فضال پدر زیاد از عبدالله ابن بوکی نرمون کنه احتمالا فهمیدن حسن ابن علی فضال انا عبدالله ابن, انا عبدالله ابن عبیعفور البته ابن بوکی رو ابن فضال پدر و ابن فضال پسر اینا همه فتحی هستن لیکن ثقاتن این حدیث در کلمات نسل آرخوی تعبیر به مبسخه شده عمده دلیش هم همینه پس حدیث ابن عبی یعفور به نسخه علم وله همین حدیث ابن عبی یعفور در نسخه کلینی کاملا ضعیفه چون محمد بن قاسم ابن جمهور بعض از از خیلی رزش خرابه خیلی این عجیبه این نسخه در کتاب مرهوم کلینی رزش خیلی خرابه و به حسب ظاهر در کتاب مرحوم صدوق به حسب ظاهر حکم به اعتبارش میشه و از کردیم عمده استدلال آی خویی و کسانی که رفتن دنبال این حدیث اینه عمده استدلال چون این رو موسطقه گرفتن امدهش اینه ما اونجا اینطور داره ایاکه و انتخت انتخته سلمن قسالت الحمام اینجا داره قسالت الحمام نداره البعرولتی تشتن افی مگر ففی ها تشتن ففر بعر مثلا بگم عبارات اینکه که این چی بوده اصلا همونوز خیلی برای ما تصور خارجی نشده قسالت و یهودی و نصانی و المجوسی و ناس لنا اهل البید البته در اینجا در این نسخه ای که به اولای کوی به همین نسخه اعتماد کردن موثبه گرفتن ولد و ل زنا یا جنوب نیامده خوب دخ کردیم. در حال دیگه زنا داشت زنا از من از زنا داشت اینا بود تو این نسخه فقط نصرانی و یهودی و مجوسی و و نب بنا اهل به. و لضا اصلا چون میگگذارن چون زنا زنناده این باید هم به بر کراحت بودن بحث نجاست نیست. آیا خوب میفهم نه تو این نسخه ای که موفققه است؟ اصلا اسم اونا نیامده ولد الزنا نیامده جنوب نیامده من الزنا نیامده هیچ کلون نیامده تو این ای که موسقه فقط نصرانی و مجوسی و یهودی آمده که خب بنا این که کتاب نجسن هر سه از اهل کتاب هست و ناسد لنا احل البیت پس عمده استدلال آقایان به این حدیثه و حب فعوه شر رو هم فعن الله تبارکتالا لم یخلو خلقا و اندناس ولنا اهل شر نداره انجس داره کنم که در کتاب در این جل اگر دست آقایان باشه در این صفحه که خوندیم واقع 11 صفحه 158 این چاپ مردم های ربانی در باب 32 ابواب آداب الحمام باب آداب الحمام اینجا هم ایشون باز بعضی از روایات اعوده این روایت رو به یک مناسبت دیگری شماره به استراح شماره 5. این رو مرحوم کلینی هم اعوده ایشون از صدوق هم نقل کرده بعد هم فهمه برواه و شیخ به اسنادی هم کلینی در اون بابی یازده اسنادی شیخ نبود پس این روایت انا ناسولانا اهلا بید لعنگی سمنر کرد مشایخ سلاسه نه هم کردن الا این که مرحوم صدوق توی کتاب مصنفاتش رو تو کتاب علل ارده تو فقیه نه ارده اما کلینی و مرحوم شیخ رو الان همان کلینی هم نشد نگاه کنم تو نواده رو یا تو عنوان باب. اگر آن کتاب پیچه هست نگاه بکنن که کلینی کجا ارده اون وقت دقت بکنی روایت طولانیه و اول روایت اینه که حدیث امام به ابن یعقوب و ابن و ابی بسی گفتند عرف لیا اطلاع یعنی نوره کشیدن لوال استدفاعی واجبی زدن فقال فعل ذالک منذ ثلاثه روز گفت فرمود نه خوبه این نوره به حساب پاکی پاک میکنه باز دو مسئله بعد امام میفرمایند ففعلنا بعد که میگم این کاره فقال لی تعلم ابیعفور میخوام نکات رو با قول تو جهل تو علم حضرت می این چیزه که اینجا آمده معظمش کراهاته و چون شخصی هم هست احتمال این که خصوص حال ابن عبید را مراعات کرده باشن داشتون به ابو بسیر نگفتن ایا که برای استجاق فلحمام در حمام به پهلون نخواب فه اینهو یوزیب و شحمل کلیته اون چربی کلی را آب میکن ایا بعد و یا که بر استلقا علقفاف الحمام به پشتها فانه یورس و, و دو دوبیله حالا اون دوبیله یا دبینه یک نوع مرض خاصی بود شبیه تقریبا جوزامه و اییا که بر تمشط فل حمام شانه نکن فانه یورس وبا شهر ظاهرا این بخارهای حمام به وقتی شانه میکنه به زیرمون میخوره موجب ریزش مو میشه این وباء شهر مراد انواع امراضی که موجب ریجده میشه و ایا که به سواق فره همم به خاطر همون مسئله دخول به سواق بخار حمام. و ایا که انتقص داره اصده که به چون یه نوع گله بوده که در بعضی از همون جا هست که سفید رنگ دار مثلا فه این نهو یسم جلوه سورت صفت میکنه صورت رو قشن میکنه و ایاکه انتدلو که رأسکه و وجه که به معذر صورت رو با پاک نکن فه اینهو یه رحبا به ما الوحش. اون آب صورت رو میدره اون رونق صورت رو کم و ایاکه انتدلو که تحت قدمه ای که که بلخذف شبیه این سنگفا اما وقت سنگفا نبوده مثل نوع به اصطلاح خذف بوده یا به اصطلاح بامیاشی مثل کوزه سفا فه اینهو یورس رو بر از پیسی ایجاد میکنه با چی بله و ایاک ان انتقتصده من قسارت اله همام خوب دقیقه ففیه ها تشتمه و قسارت ناسبی و نسرانی و ناسبه ها احلا بید تمام اون مقدمات همه مطروحاته این یک مطلب و لذان ممکن است که انسان از مجموعی روایت بفرمه که لسان لسان کراهت درسته درسته. برشنش این لسان لسان نجاست و اینجور چیزها اصلا نیست. حتی ممکن است از لسان عمر شخصیه. برای حال خود عبدالله نبی یحور فرمه داشته. این یک چیز نقطه عجیب اینه که مرحوم کلینی با همون سندی کلام خون بیم که خیلی مشکل داشت. اون سردهش بعضی از اصحابنا مشکل داشت ابن جمهور مشکل داشت محمد بن قاسم مشکل داشت در دو مرتبه یعنی برای کنیم دو بار این حدیث آورده در بار دوم خوب دقت کنیم اینطور گفته محمد ابن یحیی اوصادی ایشان ابو جعفر عومی که از اجلاص ان محمد ابن احمد صاحب نوادر حکمه رفت به کتاب نوادر حکمه این یوسف ابن سخته یا سخت بصری این تضییف شده این محمد ابن سلیمان که ظاهرن دیلمی باشه اینم تضییف شده این ابراهیم ابن یحیب ابن ابل بلاد اجمالا خوبه این الحسن ابن علی ابن مهران خوب دقیق بکنید جمیعاً این عبدالله ابن ابی یعفور نکته روشن شد در این نسخه کلینی تصریح شده که این حسن علی حسن ابن علی ابن نهرانه بزرگان ما خیال که این حسن ابن علی از فضال پدره یا خیال که حسن علی و مثلا البته وانا آی خویی تصور فهم که پدره اگر مرحوم کلینی طریق دومش نه و ما هم میفهدیم حسن ابن علی ابن فضل. ایشون تصریح میکنه در سند دومش حسن نعلیه مهرا مهران این اسمش هم در کتب رایی بینیدن بر آورده از اصحاب ازداد کازه هست اما هیچ توصیق نداره پس اون عمد روایت بوده که اینا خیلی بایش حساب کردن و من مارو هم در اینجا بحث کردن و بعد از بحث زیاد آخرش هم نظرشون رو موسقه بود تمام سر موسقه بودنش این حسن نعلیه که خیال که حسن نعلیه دو به با تصریح نجاشی ایشون حسن... با تصریح کنه ایشان حسن ابن علیه به مهرانه ان ابن نبیه بود تصریح داره پس با این تطریق روشن شد این حدیثی که امده بابه و آرکوی دقیقه یک سفرمه اشتاکنه این قلط و قلط ناختشم دادن که نخیر این حدیث سر است و هم تمامه و حکم کردن به نجاست ناسیبی و این حدیث انصافاً این حدیث از اش روشن نیست اولا کلن روایاتی که ما داریم کلن و از اش مشکل به لحاظ سندی کلن و از اش مشکل به لحاظ واقع خارجی و از اش مشکل به لحاظ روایاتی که دلاز بر برطهارت این آب میکنه و از اش مشکل به لحاظی که اصلا نقطه فندی تهارت بوده یا همینطور که آی افتایی ما افتماع در دا رزوانو داتا علیه نقصه فنی مسئله شفا اومنال این بوده اصلا بحث تهارت نبوده به ظاهر بخوره با این یکی اولا باشه پس بنابراین این مطلب که که ناسبی رو حکم نیرسلش بخواییم به خاطر این روایات فعلا خیلی مشکله رسال الله و علی محمد و عالی اطلاع زودی روشت نمیشه خب یو دور دیگه دوری دست